بعضی از خطاها ها تقریبا ملازم ماست نمیتونه بایدش نجات پیدا کنیم شکار کنیم اون مقدار که به دست ماست باید عمل کنیم هر مقدمه زمینه داره که اختیار داریم در دفع و رفعش باید اقدام کنیم بقیهش هم کنیم از خدا بخوایم به حق علی اولاد علی، با هر کدوم از حضرات خونس داریم، از طریق ایشون توسل پیدا کنیم و دنبال رهاییش باشیم. یه مدت که تلاش کنیم، استقامت کنیم، خدا دستگیری میکنیم.